لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لله. الله سيدنا رسول الله وآله الطيبين والخافرين الدائم والعبود دائما فعلنا دائما الله اللهم الفرن وجميع المشهدين ورحمنا برحمة الله الرحمن هست که در این کتاب جامعه احادیث احادیسیم ازده از, ده از در دو سه بابیشون ذهب کردن باب 29 رو مثل مرحوم صاحب وسالشیه عرافه رو که را خواهانه قرار دادن احادیسی مقدار آیات هم عوردن که خوندیم احادیسی رو که عوردن اولیش مربوط هست به مناهن نبی که و خود حدیث شما مردم سال سال موردش و سال خوندید یه دیگر حدیث رو از داعیم داره علی علیه سلام من جا عرافة فسعل و وصد به قال کفر الله علیه بوده. مثلا فرض کنه عراف این گفته این جمیر من گفت که فلانی مال تور دزدی برده خونش مثلا فرض کن تو خونش مثلا من برنجه این مال توست. خب این انظر شرعی میشه تصدیق کرد خاطر که قاعد یل هست و خبه این این مراد کفر به ما الله یعنی اون اصول و قواعد و شریعتی رو که گفته انسان نمیتونه از راهد. اگر مراد عراف باشه که در روایت الان اینجور بله راست درست و کانه اقول انه کسی را من این شغاز رغا این زفتش رغاست و تحلیل رغا جمع روبیه، از ترم رو یه دعا بوده میخوندن. البته در قبل اسلام باییم ممکنه الفاظ غریب باشه اما در خود اسلام ما از نه شو خوندیم بردشم اون که از پهیمنبر هم الفاظ مسجع و محفای. این الفاظ مسجع و مغفار بیشتر کهنه برد بودن یک, یک کلام که ما مثلا شبیه در پارسیم یا حجیمتی مثلا وکان یعبود نکسیرم منن رقا و تحریح تمایم از که تمایم جمع تمینه البته که گفتن خصوص این خب بودن درستان مهره هاییست که آمی زودی میکنن بعضا تمایمه هم هم حتی نبشتار هم هست یه اختلاف یعنی بلی نیست تمندون ها به زمان ها فرمی کرده در یک زمان اون بوده در یک زمان اون بوده شعبتون مند اشراک این تحبیر که سر مرون است با این در جایی هم آمده نین جمعه از کردنی حدیثی حدیثیت که از عبیباله در این معروفه که موبغاز رو هم در اینجا خوندیم موبغاز حساس در حدیث ابو هره رفتیم این محروف شهر سنت اشتن بل از سب دیگه ما هم نقال از شرک و در این ربایتی که ما هم داریم اهل سنت هم جز احادی سهیش از شرک به بلا از سه دیگه آمون دید در کتاب هم در کتاب آخر سرائق از کتاب مشیخه خسر و محبوبی شنه آقای تدید رسه ای رو و از طرف به لحاظ سند مشکل داره یعنی چون ثبوت کتاب مشیخه در سرايد اما این اگر تنزی سابق بشه در اساساً برد نیست ما شاء الله صادر اوکان او کذاب کذاب درید مراد باشه تصدق فقط نمی به ما انزل الله می کتاب این هم نسبتا نشو گفت یه حدیثی هست که کمی سر و سامان داره حدیث بعدی و از قص راوندی میگه این روایت مشیخه رو صدوق هم مرو نمیشه وسایل هم آورده بود خوندیم, اینجا خوندیم. از بس اگه چیزی یاد داشتون در وسایل خوندیم ال قص راوندی در اینجا داره که بن صد در کار نه فرجفکی متنش گذشت عراص داره، کاله داره، صاحب داره. حدیث شماره 5 مرحوم شیخ توصی شیخ سادو مزلم در کتاب فسال که در باب کهانه تو داریم بعد راجع به قیافه علم الفافه این هم خوندیم در رسائل نه در خساله در رسائل نه ام خوندیم در حدیث شماره شش این کتاب از کتاب مستدرک نقل کرده جعفر نعمت و خیلی الان ما آشنایی با ایشان نداریم آن مرد بسیار بزرگوهای یکی از محدثی جلو در قوم بوده به نظر روزبتن یک کم قبل از صدوق باشه الان الان لحظه حضوری ندارم خیلی کتابهای قشنگی هم داره این ساخن مجموعه ای الان به ما رسیده مرسل هست اما کتابهای قشنگیست و احادیث منترل هم داره چیزی که جایی پیدا نمیشه جعفر بن احمد قمی ایشون چند کتاب داره فکر میکنم اگه نگاه بکن بنظر این کتابش چاپ شده وقتی که ایشون بعضی کتاباش شما میدارن چاپ شده اما این مانعات هم چاپ شده یک کتاب غایات داره یک کتاب مانعات مانعات اند و کتاب مانعات داره کتاب مستقلب داره کتاب عروس داره مقداری از کتابش بنظر غایاتشی که دیگه بنظر هم چاپ شده بشت. برحال ایشان در اینجا به اصطلاح چیز از مصطبق نعم میکنه هم عبی سعیل خدری که هست و در سنت هم هست قال رسول الله خلی جنه آقور ولا من نام ولا دیوس ولا که هم فقط فسد دره هم فقط کفره لیمان ازده علی رسول الله علی آیه حاله این کتاب الان حدیث مرسله و محسوسا که از مسادر آمه است. باز از مستدرک نعمل کرده کتاب درسته نعبی منصور درام بود از مستردک نعمل الان آیا مالین از زمان مرحوم و حاجی نوری 16 تا اصل کنام اصول 16 تا اشتر معروف که همینه اصل درسته نعبی منصور و اینا به نحوی وجاده هم رمسیده یشون تذکر اینکه این چاپ شد اون نسخه ایشان تراستکی 1 در استنسازی کرده بود ایشا کتاب درسته نبی منصوره درسته اسم هر ایران فارسی باشه ایرانی باشه درسته درستی این ابن مصغان و حدیث ظاهرا حدیث بوکی باشه و از حدیث همان مسیدی پدر علی ابن حدیث علی ابن حدید پسر ایشانه رفعان الان امیر المومنی مرسل قال ان الله هم در وسایل نیامده از سلمین اصول سفت عشر بعد از حاجی نوری انتشار پیدا کرد الان چاپ کرده به اسمی گونجده الاسول سفت اشت همه رو یه جا چاپ کردن طبعا این کتاب هایی که تاوششون نهر به جاله بعضی واقعا خونه نسخه نسخه خوبیه اما احتمالا مختصر باشه مثلا اصل علاق نرزی محمد مستل اما خیلی مختصر ما ده ها روایت داریم با که صده ها رو داریم علاق داریم با همین سمت این کتاب نیست اما کتاب درسته من منصور این نموسکان و حدیث غیر این که مستر را به شوشن خود حدیث همین ارسال داره رفعاه الامی قال اینالله اوها الانبی اخبر قومت انهم قد سخف و بطاعتی و انترک و معصیتی الله نقال و خد رقاب مکه آن نه لیس منی من تکه هن آدکوه نلا، آو سحر او فصحر نلا، چه سحره و ترشی درشیگ دوستم. این بعد نیست، اما این سر ندی خیلی ووشی نداره و ما فهم خوب شلوه هایی داریم. مطلق روایات ما در این جهار مشکل داره. در کتاب باز مسنده کتاب جه قربن محمد بن شوری حضرمی این رو ما صابعاً به مناسبت باب به صحب متعرض شدیم سندش نیست این جزء روایاتیست که اجرال کاهره جزبه صحب کرسه دیروز متعرض شدیم که روایاتی در صحب داریم ما باید گذبت که این سرده زیاده تایت بردیش بکنیم مثلا یکی روایات ارمار ابن مروان یا یکی روایات سکومیه یکی روایاتی مثلا فرسان جهتریاته ارز در بعضی هاش اجرال کار نامده یکیش همینه بله این بعد حدیث شماره 9 و ده و یازدهه که درباره باره کیو دیگه توضیح دادیم اونو دیگه نمیخواد تکرار این سه حدیث مربوط به ارافت و کهانت و هم خواهی را دیگه تقریبا میشه گفت که مسئول اشیرهی بوده علایق رو میویش مختارینه مختار محله مثلا فرض کنید اشعیه بنی تمیمی کسی گفته من تمیمی ام از اون مختار سوال می کردن این حسی یا نه اینو عریف یعنی ای کسی که این قوم رو میشناسه و این عذرا چون کوفه اون هم روایت در کوفه یعنی مطلب اطلاق خیلی وجودش در کوفه این کوفه از اشاعره مختلف یمنی آمده بوده هر کدومشون عریفی داشتن این عریفیه واسه شعنه و مؤمنی مثلا بموا مثلا عزل مثلا شما مثلا اشیایون چند نفره بزرگ کوچیک دار باز حساب میکردن تم و اون از خراجش رو میدادن از مالیات چیزی که گرفته بودن چون در اون وقت به صورت مستقیم از چند مال مثل زکات و مثل خراج اینها و اینا تخصیب مستقیم میکنن اونا رو عریف میگفتن اون وقت این دیگه یواشهاش اون یک نظام اجتماعی چیزی متوسط بود به اصطلاح امزیو ان او بود یه نوع مؤسسات غیر دولتی بود مثلا اونه قابت الاشراح عریف یک شغلی بود دیگه اون کسی بود که در این مثلا فرسون یک نفر از برین فمین علیه دولت دیار میکرد دولت به اون عریف میگفت این شخص احضار بکنه این شخصی که مثلا علیه سلطه صحبه کرده اونا مسئول بودن عریف اصطلاحا این بود که مسئول بدی و خوبی و کمک به دولت و پیگیری و ترغیب و پول رسوندن و پول گرفتن هر همه کارهای نظام اشاعری رو اینا انجام میدادن واسه آها آه. تقریبا میشه با مؤسسات غیر دولتی نهادهای غیر دولتی شبیه NGO شبیه اون بودن خیلی دولتی صرف هم نبودن خیلی هم مردمی صرف هم نبودن اینا عریضه قوم بودن این سطر حدیث واجی به عریضه گیره به ارافت نداره اشتباهی کرده خدا این اینو اینجا آورده هیچی وقتی در سیدیگی ندن حدیث شماره دوازده در کتاب دعایم ام آمده ان حدیق اندقو قال کن نامه رسول الله دات ریلت تل تلیل رومی نجنون همین شاستنگ شاستنگی فستراه نودا سوال رسول الله لقوم از هرن احتمال ما میدیم که اون چی که مستقیم ان حدیق در کتاب یا امام ابو محمد همون که کتاب ما یا و سنن الاحکام باشه این احتمال رو می‌دید در پذیر یعنی دیگه ارزش واضحه یعنی یه نوشتاری بوده منصوب برمی به مؤمنین که اسمش رو فیما از سنن و قضا الاحکام از و احکام الاحکام, و الاحکام شباته شواهد رو در جای دیگه نرسید نمی‌تلایم در چه که ما وقتی اون فی وقت جهاد اداره تو مثلا حال سر ما ما تعظیم و نوبل دردی بس من فهمی که نه این رفتی به نداره این شهاب سنگ ها مربوط هست به شیاطین بله و فاست تر از شیاطین هستن فراق ببرتر لباشه هم فقط رو بگرد کردن این شیاطین گلی اموری که در آلم غیب هست میامدن می میشدن حالا این حیلت این مطلب چیز این چیزی رویست که وحب که در عقل ما هم بکنه میرزه علم ما و عقل ما نمیشه خدای نکرده این کار بکنیم بکنه. فعت به الکاهنه فیزیدون و یمکسون این کاهنایی که خودشون تموزیات می‌کردن و تخت کهنه و توسی این عبارت اگر یادتون باشه این وقت که اعصار کار کسان که ادعا می‌کردن با ارواح جزئیه متصلن این عبارت مشعره بله به اینه که با, با حباره کلیه هم اتصال بیدار چون مال در اول مقید رو هم متلق میشیدن توسط شیاطین چون اینطوری این تو داره زباد اینه ملائکه نربدنا ازا قضا امرن ببینیم اگر خدا قضا امری بکنه شب به همه عرش اون ملاکی ای که مسئول هرچند تصریح میکنه فقال و قضا ربنا به فر اززاره که اهل و سائلیطلی و شماال پایینتر فرقول رو داره که اون هم تصویر میکنن هر تایت دوهزاره که اهل ساع دنیا مخصقال باید, باید, باید از ساع دنیا باشه به اهل سفیت اما س دنیا هم استعمال شده گفته شده اون مجازه مثلا از طریه که دار وافه با الام به اهل سفریه اما در فقران و دار وفره داه این بهثر ظاهر باید وله افاصله باشه و به اصطاحح معرفه میگن این مواردی استاعاجاس ساع دنیا ا ضبط سحی ععنی باید قائ کرد هم که این غلتهقاائ باید از سمااح دنیا باشه جووار آن داره و ذگر از سمااع از دنیا به زیرت اونجا از سمااعت دنیا دا اونطور به وارد است اما سما از دنیا هم دا و مثلا قاعدش اون بود خلاف لغت نیست اما خلاف اون دوابط کلیست که در ذهن ما هست برزنم حتی یک برزانه که اهل سماه دنیا وقتی نشون میده که چون شیاطینگاهی مطالبه که در اغول کلیه و ارواح نفوس کلیه بوده اینا تلقیه میکردن میفهمیدن می, می بعد این به چهنه می گفتن این باید ظاهرش این طوری رو سبحان الله الابایی که سنده خیلی روشن نداره مثلب عجیبی رو داره که ممکن بوده که حتی با عوال مقیب و اغوله مثل ملایقه و همه رسول عرصم به این راه ارتباطی داشتن دخلت بکنی؟ فتستر سیاتی اصلا فروبما اعتربوشه یه؟ و خیلی چه این تعدیر عجیبی تعدیر شنه که شیاتی هم تمام اون تصویح رو نمی ده ازیاشو میفهمید خیلی تحبیل زیاد. فقام به ما طلب بوشه یه بعض از اون مطالب رو میفهمیدن فعط و ال الکهنه باز کهنه هم خودشون کم و میکردن خیلی قرقاتی بیشد دیگه فتخت و الکهنه و توسیب یعنی اون مقداری که اگر سوابه مال همون حد درستی که از عرد شروف رو دوینا رسیده بقیهش هم یا شیاطین کم فهمیدن ی پس این ربایت هم باره که به اون چیزی که من انتردم میکنه که به ساکهنه ارتباط با قبول کلیه و نخوص کلیه داره دارد بعد امام میفرد صم اینالله من از سما به هاده نجوم دیگه این هم درواد داره که بعد از دلالت فعلا بر بعد از وحی خاتم انبیا دیگه شیاطین از همین مقدار هم محروم شده این درواد اواله باقیه نیست که ما با اول تابی اونها درست میکنیم. تو میگن الله من از به حال هاری نجوم کیلیت فهمان قطعاتی که هاند. از فهم که کهاند ارتباط با نفوس جزیی است. اما میفهمد اون ارتباط با نفوس کلیه و اول کلیه منقطع قطعشون. بعد از این که شاید نتونستم. فعلا کهانات. لذا اگر مواردی در کهانات هست. اون در حقیقت اتصال با نفوس جزئیه نه با نفوس از بیاو مرحله ممنوع شده است و خلاولا لا اله الا من استرع بالسمع و اصرع و شهاب و مبين و آيه مبارکه به نا خود ماقاعد منها منهم مقاعد السم تمن يستنئ الان يجذ له شهابا و من يستنئ الان يجذ له شهابا رسلا مخ... یک روایت هم در زید اون از احتجاج نرم میکنه که از کنم نداری مداشت سالمندی دیروز خوندی خیلی عجیب ها. حدیث با این که میم مرسل از, تو از کتاب دعایم همون یک لطایق و ذراعف عجیبی رو دلارت میکنه. در کتاب احتجاج در سوال سآل زندیق من تمنعین اصلا کهانه این کهانت از کجاست و من این یخبر و ناسب ما یهدوست حال این مرسه ها مکانت جاهلیه خیلی عشیب از اما فی کل حین خسرت من الرسول کانر کاهن به منظرت الحاکم یه افتا که مونه علیه و علیه من الرمون فبین هم عن هم این اشیاء تحدست امام می که این کاهن خبر می زاد. اما این کاهن اینجوری بود لذاره که من وجوه ها این منشه مستر علم کاهن رو امام مخواهد مستر علم کاهن رو توضیح در را سفر این مثلا چشمش مثلا نگاه میکردیم و رنگ اوی طرف رو میپرمیم و زکا القلب حوش و وسوست و نفس و خطنت و روح معه ترس قلبه این همون مجموعه‌ای است که ما رو گفتیم او مفوز این جزئیه معه قلبه لانه ما يحدس ما يحدس لانه ما يحدس الارضن و حواس فذلك يعلم شیطان و يؤذيه الى و یخده رو به ما یهد داد فلعرض یا و درست شد؟ این في همه هم. و همه نفوس جبیه بعد و اخبار و سما این ها نقوص هم. و اخبار و سما فه این نشریعاتی کان و مقاعد اصطراب سم که صوف حافظ چلا پروژه فارسی بلا علی حمزندی قاضی بشنه مقائل استراق سن و و لا فوجر در اون زمان ارذاک یعنی در اون زمان شیاطین مجذوب نمی‌شدن ممنوع نبوده و لا ترکم بنجوم و نما خیلی میگم با اینکه این احادیث مرسل و ضعیف و یک هوای غیبی عجیب داره و انما منحت من استراق شهر چرا دیگه قرار و این که از برکات خاتمیت ها انبیادی اینطور نبوده در خصوص نبوت خاتمه چون خصائصی داره نبوت خاتمه یکی از خصائص شمیه و این نمامون از این استقلاب سم لعلا یقع افتل از سببان یو شاکل خبر سما این برای عظمت رسول الله دیگه امالو... الله رسول الله هم در فضل رحمه ترقیه میکرده اون شیاطین اعتلق و شیع ها به احترام رسول الله اون شیع ها رو شده خب که ما یک درصد دو درصد هم ارتباط با باشه و این ممامونت من استرابستن لعلیق اقلع سبب یشاتل الوحی من خبر سنا ویولت دستور اهل آذ مراجع آن الله لحساب الهج و نفیش که موجب تلبیس اشتباه بشه و کان شیطان یه سرقلت خلامت الوهده تی تغییر لطیفه اینجا داره کلمه الوهده اونجا داره یه اتلافوی شیعه منهاش شیعه من خبر از خبر از سما اونجا شخصی بیشتری بود به ما یه دوسم از الله فی خلق و یختتفه ها این یختتفه ها میگذردش اختطاف که انما این کلمه هم به شیطان میرسیده باید به ملائکه میرسید این یواشتی اونو میگرفته علا خلاف القائده این وحی الهی هم کلمه واحده مال شیطان نبوده خیلی تعبیر عجیبی بکار کار بود فیضه هم یه به طبه ها الال انس ااض زاد کلاس می انندی خودش هم با تموز زیادش میکرده فری به صال حق به به باتل و ما کاهن من خبره من ما کام یخده روبه تاه ما اددا وعله به شکار سر کل میگه ممکنه پنج هم راست باشه این مال اوناست من ما سنع و ما اختعفی تا من باتل مازادفی ظاهرم باتل زادفی به نحوه از, از از اون باطلی که خود ازیاد از کردیم درست شد؟ تا اینجا این اخوار از نفوس کلیه و عبول کلیه فمند و منعت شایاتین انستراب سن این قطعه از کهانه از سرم در روایات آمده که اینو ای اتصال به نفوس یعنی از مجموعش اتصال به نفوس جوزیه از سون چند از این ساکی این شد و منذر و مخبر یا منذر منع از شیاطین من استراغ سر تاقت اته كهانه و يوم خوب دقت بكنه این نمات عد شیاطین اله كهانه ها اخبار للناس این همون اوج جزئیه همون حوادث جزئیه اون شیاطین دیگه نمی‌خازن امور کلی خبر بدهن در اینکه با وکه اشتباه نشه در اصلش اون بود توی شهید دو درصد واقعی بود از مقامات بالا بود دیگه بعدم اون دو درصد هم حضب شد این نما تا عدد شیاطین کلافوهانه ها اخبارن لناست به مایت حدسونه به اصلا کانه اینجا نشسته توی مشهر توی کابل توی هند توی پاکستان یه اوروبا هم وی که صحبت میکنه نمیتونه نرین و ما یه هدف و شیاطین تو از دی یا ما یه هدف سونه بود من را تازه این بوده از حماده سام مکانی مکانیزم را من صاره دن من, من قاتل من قتل، و من و هم به منزلت امسال ناز ایدم. بعدم تازه در تمامی نهرو و هم این من بله. به منظرت امثال ناس ایزن تازه اون شیاطین هم صدوق و کذوق اونها هم تا بود تا یه خبری هم از یک شهر دیگه نحقی میکنن باز اونها راست و دروغ داره بله این راجع به روایات اینجا بود من یک مقدار از ایشون بعد بله. بعد بله. به عنوان تقدم و یحتید داره بله. البته روایاتی که ما داریم بله بیشتر اینها روایاتی که در کاهنش خیلی قدیل حتاب صاحب نه در کاهن خیلی بله این لاجبه این روایاتی تو چند تان روایات قدامیتی تو درش خوندید بعدشان یه احتیاج نمید این لاجبه مجموعه این روایاتی که ایشان تا اینجا در باب سهر و کهانت و عرافه و این قسمت هاییست که عرض شد من یه مطلبی رو راجعه دیوز در این, این باقیدی رو بخونیم راجع به این مرموم برقی که عرض کردم دیوز بعیده مثلا روایت از عبدالعزیم از کردم نکتش این, این بود که تصور ما این بود که مثلا نمیتونه سنگیر کن عبدالعزیم. بعد باز دو که من شکم شکم دو دو رجال دیون. اصلا این دو کوثر و رسالت خود برقی نعم کرده و با همین که اینجا اصل این قصه رو مرحوم نجاشی در ترجمه عبدالعزیم حسنی که اورد اصلا اصل نابهغه خود برقی برقی میگه میاد نازم و اونده نازل به در راه مستقر مردم خبر نمی که این از صادق رسول وجلا مردم پیش حتی و و مردم بیشیشون رسامن میکردن و که مستطر بود چون اصلاح سادات حسنی در نوزان دیگه معروف به اصطلاح مزیع ما به انقلابی بود، حتی سادات حسنی هم بودن که سادات که قیام مزیع بودن اما کلن سادات حسنی نه معظمشون جشنخ والی مزیع هم بودن معظمشون به اصطلاح جزو قیام مزیع لذا هم روی جرد که حسنی بودن احتمالا مثلا دنبالشون بود قدر از ناقل اون قصه خود برقی ازن، من ناقل اون قصه و تعبیرش که عرف و اکثر اون بعد اون که حضرستو شناختن نمیگه میگه, میگه عرف و اکثر اون بعد خود برقی میگه وقتی که پرکر این اینم باید خود برقی میگه مثلا ناقل کل, کل کلاب برقیه برقیه پسر برقیه بسته. وقتی پرکر و ایشون رو لباسشون تن درمی که برای شسته دیدن یک روحی در لباسیشونه نمیشته همه عبدالعزین به نبدولا به نالی نصب خودش داره. درم قرصه بردی میگه منم شد مزیدشون رسیدن تقضی میفردن بردی میگه عرفه و اکثر رو احتمالی که ما میدیم که روز عرفیم بعیده با در نظر که راوی خود بردی و تا اصلافاً عدیر نحسین سعدابادی همیترسته نرمه کنه که این روایت همین مستش عدیر نحسین سعدابادی احتمالاً مراد برقی این باشه میگونستند این سهل عبدالعظیم و حسنی سهل بزرگواریست بعد از موت نصبش رو فهمیدن نبیمه چون عبارت آنها چیز میکنه کسا نمیشه آنها میشونه بایی چون شداره اول شداره خودشون یه حتی, حتی عربه و اکثر آن برش رو ک علوانه تیز و الواهی ایشون برن خدمت ایشون برن حتی عرفه و با اکثر برن لذا احتمال میدم برای علم و بین شیعه شناخته شده بوده به اینکه ایشون عبدالعزی و رو کامل نمیدونستن که عبدالعزی سریکی بسریکی این نصر رو نمیدونستن نصر رو بعد از مصر میکنن ظاهران اینطوری بود. و خیلی بعیده که بفهمه و اکثرون باعث که نصابش از چیزی بشه به نظرم باز اینجوری معنا بکنم چون دیروز گفتم خیلی این دو تا چون امروز تو مراجعه کردم علایهاله به ذهن من اینطور میاد که شاید با عنوان عبدالعظیم حسنی شناخته شده بود و مردم من جلو خدا مثلا برقیرا داره من خدمتش رفت سرم نشد این عباراتی که شرح هایی که داده نمیگه اما میگه عرفه اکثر اکثرو باید خودش هم نهارم میکنه که لما توفیه و جور به دل یقصر یا دل یقصر بعد دیگه لباس هاش کندر بیدن یک که گفته هنه عبدالعظیم به عبدالله بلپنم بیدن حسن علی نگید خاله یه زا این طوریست بگیم ایشان شناخته شده بودن در ری و آشنا بودن اما نصبش رو بعد از موت برن بقید بیدونی خواهد سیل حسنی بزرگواری و ج اما خواهر های الهی الهی مراسمی کهشون خدا رحمت کنه امام حاضر های استاد ما میفرم من این وقتی مریض بودم تو اتاق بودم دارم تو ایوان توی که شما خیلی باشو رفیق بودیم تو بیرون نشسته بودیم به نظرم فانگار میاله این به به نظرم اینجور اشاره کنه که مثلا تو اون ایوان اندرونی بعد میفرم ده که حس کرده مثلا یک لباس به من می پوشوند نمیبینم نه لباسی نه, نه کسی حالا، در حال مریض بوده. برای شفایشه مثلا یک لباس به اسم رسول الله بر من پوشوندن اما کسی نمیبینم که احساسات نمی یک لباس به اسم یک لباس به اسم هم حضر به اسم چارده معصوم خوداری برای بر من چارده لباس بر من پوشیدن 15 به نام حضرت عبدالعظیم حسنی شده خیلی عجیبه پای به مصطفیع اصغر هست اول از بسیار معروف درشون گفت 15 به اسم حضرت عبدالحسین عزیز حسینی حسنی خوشو نمیاد. یه ظاهراً چون که بعد حالشون خوب میشه. علاوه بر اینکه مقام حضرت رو که ایشان در درون حالا دیده بود در این خطه. من احتمال میدن مراد بردی از اون عبارت این باشه نثر رو نمیدونستن نه خود ایشا چون خیلی بعید بود ایشا ندونن با ایشون به روایت اما خود بردی هم باید در اینجا نباید بله که من ازشون ایشون حدیث کردم. اینم چه از اکثر این کار مرحوم نجاشی میگه لهو خطبه امیرالمؤمنین کتابی در خطبای علی مولوی به نسبت میگه سندی که میاره از ابو تراب رویانی ان عبدالعظیم به روایاتی این کلاها چه در جیوه اینا هم چه عجیب اجیو تعبیر متن کتاب مرحوم نجاشی یکی و اون آخرش بعد از سند چیز دیگه است که بعضی از ازگان بحث بکنن بله مرحوم شیخ طوسی در فهد میگه می‌گن کتابو من چند دفعه عرض کردم یه اصطلاحی بود در صادر اگر از کسی شفاهی حدیث شنیدن روایت میگفتن یا حدیث میگفتن اخباری اگر همون مطلب رو نوشتار داشیشو میلاد به طرف ولی اون بود مثلا پنج تا حدیث بود اینو کتاب میگفتن اینی که نجاشی عده زیاد میگه لبو کتاب و لا نمیره زاره از این قبيله در حقیقت کلمه کتاب به مکتوبه معنی شیخ و اما این نوشتایی شیخ نجاشی کتاب خود خود بر برمید و میگه اخبری به روایاتی کلاها روایات ما کتاب فرد میگون همه مرحوم شیخ توسی بگه یه لبو کتاب روی اسم نمیداره در ایش بعد سندشی که زشن او از تا خود هایی برقیه خیلی همون هم خیلی و از از ازنوبوته از از اعداد برقی از عبدالعظیم عثمانی خب مرحوم نجوشی این فرست ابن پیش بوده اعتقاد داشته که این فهرست خیلی زیاد داره غلط ورود داره ظاهرا انجام نقد نکرده جز های ابن بطی گرفته احتمال هم داره که حق با نجوشی باشه جز موارد ابن بطی باشم من واژه بحث نمی‌شم چون بحثه خاص شده من میخواستم اون مطلبی رو که دیروز عرض کردن که به اصطلاح یه مقداری عجیبه به ذهن من اون تعجبیش حل شد سوی مشکل ندام احس کنم که یک باب سی و یک هم در کتاب جامال احادیث ایشون داره با عنوان حکم رغا در باب رغیه در از مجموعه ترسمانی ما حدیث اولش حدیث لا رغا یا لا رغیه لا رغیه از سن دو جور خونده میشه هلا فی سلاسه فی همت همه خونده به شد راسته همه نخوند بعد در کتاب جعب اونی که خوندی در وسائل در جعب یاد داریم این چون در وسائل نداره به اصنادی علی ان رسول الله نها انعر و انفخات توی موجه سجود و فی و فی تعام و فی شراب تعام و شراب به خاطر این که مثلا سردش رو کنه ندم بسیار یکی موزه موظهر به خاطر این خاک ها یکی هم روحا این به خاطر اینکه خود روحیه اما این که رسول الله خودشون داری در کتب اهل سنت هم از هست ازش تحریر به نفس شده نفخه نفخه با نون و فا و سی سه نفخه یعنی دمیدن به ازداره حدیث شماره سه در کتاب صدوق هم آمده حدیث شماره چهار در کتاب دائمونستان و رسول الله از نه نه بق کتاب الله و مالایوه ع رو به ذکره این خیلی عجیبه این, این واقعیتی اقتصادی که با این رشه آشهداررن، خیلی از این رغیا یک اعتبارات انخوااز داره که انسان اجرا شه نمیفهمند. قی هم اونها نح ها ممکن کفر باشه و نه ر به کتاب الله، هنده این نهاد شد مثلاً چون داره که بعد پیرو نر داشتن در کتاب داد میخوام بعضی می خوندی بذش بعض میخوامش می ممالای واقع قله نهادی رقام ما اخلاق و سلیمان و نداود و الانس بلجین بلحام این هم گذشته وقتی که اصل اینها رو به سلیمان و نداود نسبت داده شد بعض در کتاب دعائم انبی جعفر محمد بن علی قله ادارت این از است که در دعایم آموده پیش در مسادر ما فیلن موجود نیست ادارت تا انترق الجرح رقا یرگی یرگی به معنی انترق یر جرح مقال من و دن و ماتخاق و من حلی فرق یده که حلال جروح و قل از کردن سال رقا مال جروح نیست مالا به جروح هم هستان در اینجا عنوان جرح مال رغا به جور هم هست جرح در اصطلاح خود پنیش عبارت از به اصطلاح به اصطلاح جدا شدن به اصطلاح چی میگن ترکیب انفساد انفساد قسمتی که در بدن اتصال داره و از اون خون بیرون بیاد اگر از اون خون بیرون نیاد اصطلاح هم گره بیاد و قول بسم الله اینجا داره عرقی که بسم الله الاشبر اون رو سوندیم این حدیث رو منر حد و الحدیب و الحجر الملبود و ناب الاسبر اسمر ناب نهی نا دندان، اسمر یعنی سیاه شده یعنی خاکسته بشه ولی ارق فلا یر ار لا یر یعن ارزم یعنی ارق رد رد خونه نشه ولی این فلا تسهر خوابم چه، چه فراتون بیخوابی ندیشه. اینا رؤیاست، این رؤیه‌ای که از کدی می‌کشه اینا بود در طور الله. بله. یکی هم حدیث دیگری هست شماره 6 که رسول الله که کسی مارگدیده بود این رو روغیه کرد به کتاب الله به قرآن، داره سوره هم. ازا فهمش اشکال نداره بعد پول گرفتود از هم اشتباه نید. حدیث شماره هفت، این رو مرحوم شیخ راضی در تفصیلش هم من صادقاً عرض کردم مرحوم شهر بولکتوها رازی که از مفصلین بزرگوار ما نسان خیلی جایلو بنده شاید گفت مقدار زیادی هست مجموع بیان از ایشان گرفته بسیار تفصیل کرمایه و پار علمیه تفصیل از همین تهران ری برستدام ری اون زمان لیکن چون ایشون جزء قائلین بعدم ها هم مثل خود مثل به مثلا خود مرجع بیان عالی بودجه خبر نیست مسکن ممتازه منجرین آهوجی به خبر نذارد ریالیاس ری کمیاری نیست و نذارم اصلا تکیه یی دنبال سهادو خیلی از احادیثی که در این کتاب اول خطوط موجود حالا موجوده در مسجد را آمده مطرح می‌کنیم این معروفی نه در مسجد را آمده اما این مفصل چه بوده است به استدلال مرگ دیده ای رو با آن شفا داده پولی هم گرفته پان کار ااشال داره کوول بهش گوسند دادن بر من این گوسندی میخوام تداد سالال میکنه شما نداره مبارک باشه اگر هم گستان پشتین بر هم یه چنگ می ایشون بهشون بعد شماره نه بازار کار حی و مقود ن کسی رو به نقاقا این تکداره شما در اون باور قبی هم با بیست هم. خونه. این مجموعه، روایاتی بود که ما در اناوین مختلف داشتیم خواست همون روز و های در حفظ سنت بشیم یکی دوره یه دموندو بیشتر دستان هست و یه روایات اهل حفظ سنت و فتاواشون زمینه های فقیش که بعد دیگه آشاد جرم که بحث رو و زمینه های فقیش خودون با